آورد به استرابم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نپزود. رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و رفتن و بودن مخصود. اندیشه جرمم چو به خاطر گذرد، از آتش سینه آبم از سر گذرد، لیکن چرت است بنده چون توبه کند، مخدوم به لطف خیش از سر گذرد. آنها که خلاصه جهانیشانند جهانی شانند، بر اوج فلک براغ فکرت رانند، در معرفت ذات تو مانند فلک سرگشته و سرنگون و سرگردانند. بیزد به بهشت وعده با ما میکرد پس در دو جهان حرام می را کی کرد، شخصی ز عرب با همزه پی کرد، پیغمبر ما حرام می بروی کرد.